الویز ساعت پنج و ربع تاق باز روی کف اتاق دراز کشیده بود و یک گیلاس نوشیدنی را رو روی سینه های کوچکش گذاشته بود گفت میخوام بگم که تو واقعا والتا نمیشناختی. اون تنها پسری بود که میتونست منو بخندونه میخوام بگم که راستی راستی منو میخندوند. خندوند این را برانداز کرد و گفت اون شب یادت میاد سال آخرمون میگم که لوئیس هرمانسن دیوونه به اون سینه بند سیاهی که تو شیکاگو خریده بود سرگازش اومد تو اتاق مریجن قشقش قشق خندید به شکم روی رو به الویز دراز کشیده بود چانش روی دسته صندلی بود گیلاس نوشیدنیش روی کف و اتاق دم دستش بود الویز گفت اینطور منو میخندند با من حرف میزد منو میخندند پشت تلفن منو میخندند حتی با نام منو میخندند اینو برات بگم که حتی سعی نمیکرد حرفش خنده دار باشه اما دار بود. سرش را اندکی به طرف مریجین کرداند ببینم. یه سیگار میندزی طرف من؟ مریجین گفت. دستم بهشون نمیرسه. الویز گفت. بلا بگیری. دوباره سقف را نگاه کرد و گفت. یه بار خوردم زمین. اون روزا در میزگاه اوتوبوس درست جلوی فروشگاه پی منتظرش می شدم. یه بار دیر اومد. اوتوبوس داشت حرکت میکرد. بنا کردیم دنبالش بدویم من خوردم زمین و موچه پام پیچ خورد. در اومد گفت بیچاره امو نازنازی منظورش موچه پای من بود. به موچه پای من می گفت امو پیر نازنازی. خدایا لنگه نداشت. مریجین گفت لو آدم شوختب نیست. چی؟ میگم لو آدم شوختب نیست. خدایا دست به دلم نزار. آره اینطور خیال میکنم. از فیلمای کارتون رو اینجور چرندیات خندش میگیره. الویز سرش را بلند کرد. لیوانش رو از روی سینهش برداشت و کمی از آن خورد. مریجین گفت خب زندگی که همش این چیزها نیست. یعنی میگم زندگی که همش این چیزها نیست. این چیزها چیه؟ بابا همین چیزها دیگه خنده و چرندیات. الویز گفت کی میگه نیست؟ گوش کن. اگه آدم خیال نداره راه به چیزی بشه پس باید بخنده مریجین خندید و گفت قابل تحمل نیستی الویز گفت چطور بگم نازنین بود یا شوخی میکرد یا شیرین زبونی نه مثل شیرین زبونی اون پسرکه مرده مردشوی برده شیرین زبونیش به خصوص بود میدونی یه بار چیکار کرد مریجین گفت امه. سوار قطاری بودیم که از ترنتون میرفت نیویورک تازه رفته بود سربازی. توی قطار سرد بود و من کتامو کشیده بودم روی هر دو مود. یادم یا ژاکت جویس مارو تنم بود. اون ژاکت آبی قشنگ یادت هست؟ میری با اشاره سر گفت که نه. اما الویز سرش را بالا نکرد تا ببیند. خب. دستش رو یه جوری گذاشته شکم من. بله دیگه. اون وقت ناگهان در اومد گفت که شکم من انقدر قشنگه که دلش میخواد افسری بیاد بالا و به اون دستور بده که دست دیگهش رو از پنجره بیرون نگه داره می اینطور ادالت برقرار میشه بعد دستشو برداشت و به بلیت فروش گفت که سیناشو پیش بده به اون گفت که تحمل چیزی رو که نداره اینه که آدم به یونیفرم خودش افتخار نکنه بلیت فروش تنها کاری که کردیم بود که بهش گفت بگی بخواب <تصفح> الویز لحظه فکر کرد سپس گفت چیزی که میگفتا اهمیت نداشت بلکه نحوه گفتنش مهم بود هیچ وقت شده درباره اون چیزی به لوبگی یعنی میگم اصلا حرفی زدی الویز گفت چی بگم یه بار پیش کشیدم اما اولین چیزی که پرسیدیم بود که درجهش چی بود درجهش چی بود الویز گفت ای بابا نه فقط میخواستم الویز ناگهان از ته دل زیر خنده زد میدونی یه بار چی به من گفت؟ گفت که احساس میکنه توی ارتش داره ترقی میکنه اما در جهت مکوس گفت که وقتی اولین درجش رو بگیره به جایی دادن پاگان آستیناش از لباسش جدا میکنن گفت وقتی ژنرال بشه دیگه پاک لخته و تنها چیزی که به تنش دیده میشه یک دکمه کوچی که پیاده نظام توی فرو رفتی که نافش الویز به مریجیین که نمیخندید نگاه کرد گفت به نظر تو خنده نیست ؟ آره فقط الان میخواد بدونم چرا درباره اون چیزی به لو چرا؟ چون خبر مرگش خیلی خرفته. علتش اینه. اینو هم از من داشته باش خانم کارمند. اگه باز ازدواج کردی به شوهر چیزی بروز نده. میشنوی چی میگم؟ مریجین گفت: چرا؟ الویز گفت: چون من میگم. اونا دلشون می‌خواد فکر کنن که توی سراسر زندگیت هر بار که با مردی روبرو میشی بالا میاری. شوخی هم نمیکنم البته چرندیا تحویلشون بده. اما هیچ‌وقت راستش نگو. میخوام بگم که هیچ وقت راستشو نکن اگه بهشون گفتی که در گذشته با مرد خوشگری آشنا بودی بلافاصله فاصله باید اضافه کنی که خوشگریش دل تو میزده. و اگه به اونها گفتی که با مرد شوخی آشنا بودی باید بگی که طرف حقه باز یا آدم حسابگری بوده اگه نگی وقت و بی وقت اون بیچاره رو توی سرت میزنن. الویز مکس کرد تا نوشیدنیش را بنوشد و فکر کند سپس گفت یه چیز دیگه. وقتی به حرف آدم گوش میدن قیافه آدم های بالغو می میگیرن مرگ خودشون با هستن اما فریبشون رو نخور حرف باور کن اگه برای هوششون ارزش قائل بشی کارت ساخت است قسم میخورم مریجین با چهرهی گرفته چانش رو از روی دسته کاناپه بلند کرد برای تنوع چانش رو روی ساعدش گذاشت به اندرس های الویز فکر کرد بلند گفت تو نمیتونی بگی لو باهوش نیست. مسلمه. مریجین این معصومانه گفت. یعنی میگم آدم باهوشی نیست. الویز گفت. چی بگم؟ بحث کردم بیفایده است. خوب درس بگیریم. ناراحتت کردم. باید خفقان میگرفتم حرف نمیزدم. مریجین گفت. خب پس برای چی زنش شدی؟ خدایا چی بگم؟ به من گفت آشق آثار جیناستینه. به من گفت کتابای اون براش خیلی با ارزشه دقیقا این حرف رو زد بعد که زن و شوهر شدین فهمیدم حتی یکی از کتاباشو نخونده میدونی نویسنده دلخواهش کیه ملیجیین با اشاره سر گفت که نه مانینگ واینز. هیچ وقت اسمشو شنیدی؟ نه منم نشنیدم هیچ کس دیگه ای هم نشنیده. این بابا کتابی نوشته درباره چهار نفر که تو آلاسکا از گرسنگی مردن لو اسم کتاب یادش رفته اما مرگ خودش زیباتری نصر را داشته خدایا انقدم رو راست نیست که مرد و مردونه بگه کتاب و دوست داشته چون درباره چارتا آدمه که توی کلبه یخی یا همچین جایی از گرسنگی مردن آخه مجبوره بگه نصرش زیباست؟ مریجین گفت خیلی خوردهگیری. یعنی میگم خیلی خوردهگیری. شاید کتاب خوبی الویز گفت حرفم باور کن غیر ممکنه لحظه توی فکر رفته سپس افزود دستکم تو کاروباری داری میخوام بگم دستکم تو مریجین گفت گوش کن ببین هیچ به فکر رسیده بهش بگی که والد مرده یعنی میگم دست از حسادت برداره وقتی بدونه که والت میدونی که کشته شده و قضیه تمام شده رفته الویز گفت ای عزیزم تو یه زن کارمند ساده و چشم گوش بسته ای بدتر میکنه اون وقتی که کسی جلودارش نیست گوش کن الان تنها چیزی که میدونه اینه که من با آدمی به اسم والت می میرفتم گردش با یه سرباز شوختب فقط وقتی دستم از همه جا کوتاه شد بهش میگم کشته شده وقتی دستم از همه جا کوتاه شد اگه قرار شد بهش بگم که نمیگم اگه قرار شد بهش بگم بهش میگم که تو عملیات کشته شده مری جین چاناش را که روی لبه ساید دستش گذاشته بود جلوتر برد. گفت ال آن. چرا به من نمیگی چطور کشته شد؟ قسم میخورم به کسی نگم باور کن. خواهش میکنم. خیر خواهش میکنم باور کن به کسی نمیگم. الویز نوشیدنیش را تمام کرد و دوباره لیوان خالی را سر بالا روی سینش گذاشت. گفت به آکیم تا میگی؟ خیر نمیگم یعنی به هیچ کس نمیگم الویز گفت باشه هنگ اون یه جای استراحت میکرده در فاصله دو حمله ی چیزی بوده این از قول دوستش میگم که برام نامه نوشته والت و یه نفر دیگه مشغول بندی یه اجاق کوچیک ژاپنی بودن سرهنگی میخواسته اونو بفرسته خونش یعنی که داشتن از جعبش بیرون میاوردن تا دوباره بندیش کنن دقیقا نمیدونم به هر حال. برست بنزین و اینجور آشغالی بوده و جلو روش و منفجر میشه. اون یه نفر فقط یه چشمش کور میشه. الویز زیر گریه زد. دستش را دور لیوان خالی روی سینش حلقه کرد تا نیافتد. مریجین این خودش را رو از روی کناپه به پایین سراند. با زانو سه قدم پیش رفت. خودش را بالای سر الویز رساند و بنا کرد پیشانیش را نوازش کند. گریه نکن ال گریه نکن. الویز گفت. کی گریه میکنه؟ میدونم اما گریه نکن میخوام بگم که ارزششو نداره صدای باز شدن در خانه آمد الویز تو دماغی گفت رامون است برکشته لطفی برام بکن برو بیرون تو آشپزخانه و به این زنک بگو زودتر از وقت شامشو بده باشه به این شرط که قول بدی گریه نکنی قول میدم برو دلم نمیخواد الان بلند شم برم بیرون و تو اوناش پس خونه مردشوی برده. مری جین بلند شد. تعادلش را از دست داد و دوباره به دست آورد و از اتاق بیرون رفت. در کمتر از دو دقیقه همراه رامونا که پیشا پیش اومی برگشت. رامونا تا آنجا که میتوانست قدمهایش رو گشاد گشاد برمیداشت تا هرچه بیشتر با گالشهایش سر و صدا راه بیندازد. مری جین گفت, گالشاشو در بیارم. الویز که هنوز تاق باز کف او تاق دراز کشیده بود بینیش را با دستمال پاک کرد خطاب به رامونا با دستمال جلوی دهانش گفت برو بیرون بگی بگو گالشاتو دربیاره. در بیاره خودت که میدونی نباید بیای تو رامونا گفت تو مستراه الویز دستمالش را کنار گذاشت و بلند شد نشست گفت پاتو بده به من اول بگیر بشین خواهش میکنم اونجا نه اینجا خدا. مریجین که زانو زده بود به دنبال جعبه سیگارش زیر میز را نگاه میکرد. گفت ببین حط بزن چه بلای سر جیمی اومده. چیزی به نظرم نمیرسه. اون یکی پاتو بده به من. اون یکی پاتو. مریجین گفت رفته زیر ماشین. دلخراش نیست. رامانو به الویز گفت اسکیپه رو دیدم استخون دمه دهنش بود. الویز گفت چی سر جیمی اومد؟ رف زیر ماشین و مرد. اسکیپه رو دیدم استخون دم دهنش بود. اون وقت الویز گفت: "یه راس پیشونی تو بیا جلو." دستش را دراز کرد و گذاشت روی پیشانی رامونا. "یکم تب داری. برو به گریس بگو تو باید بالا بخوری. بعد یه راست برو تو رخت خواب. من بعد میام بالا. برو ببینم. حالا زود باش. اینو هم با خودت ببر." رامونا با قدمهای بلند آهسته از اتاق بیرون رفت. الویز به مریجین گفت یکی بنداز پیش من یه نوشابه دیگه میخوریم مریجین جلو رفت سیگاری به او داد راستی عجیب نیست جریان جیمی رو میگم چه تخیلی اه میری نوشابه بیاری بطری رو هم بیار نمیخوام برم اونجا همه جاش انگار بوی آب پرتقال گرفته